اوضو بالله من و الحمد لله و الله و آله طیرین دائمه على الله اللهم و منطقی شده مسئله یه سب صحابه برس کردیم انصافا مجموعه یه روایاتی بین اهل سنت و ما وجود داره راجبی این مطلب راجب به عنوان صحابه سنوی ها منطقی اهل بید کردن خودشون هم اما اونی که درش شلاخ باشه منحسر به طریق اهل بید ما هم داریم سرنش هم معافیم عنوانش هم سب صحابه صحابه نبیه یا صحاب صاحبه نبیه از این ورش هم که بگیم سب جایزه اونم نداریم نه اونا دارن اونا به این عددی از صحابه یعنی به عنوان همه سر میرمونیت آنوال و سیخه این و دیگران بله داریم ما سر رو داریم در شواهد تاریخی داریم اه... یک رواهد در شیعه خودیم که جواز رو اسفات میکنه بله. روایات عدد جواز و مثلا که در مدینه به ذهن ما اولین صحابی که نستجی و بلله مورد سبقه را گرفت امیر المؤمنین سرات الله سرامانه حالا این که که ما اینها رو متعرض شدیم و گفتیم انصافش این روایت نعم را به ما این ثابت نیست به لحاظ سندگی مشکل داره به لحاظ مستری کتاب کشی مشکل داره به لحاظ سندگی که مشکل زیاد داره یکی هم و به لحاظ شواهد و مطابعات و مبارنات به اصلاح و اولاد شواهد خارجی جای انصافت اون هم معید نداره. چرای دیگه این تحبیر شده باشه که سب بکنی واسه هم رو باید شخص معیدی اون هم ما برخیار نداریم یکی داره سبه ما و براعت من ها براعت چرا؟ دیگه آیات برای امن ما اعتبره الالله اعتبره این که زیاده بحث برایت در سنده صحیح هم داری تو برانی اسلام علی صلی اللہ وسلم برایت من الله رو باتی مثل مبدالرحمن در ایمان و کفر کافی علایه این رو داریم اما سر رو به عنوان صحابی معین نداریم و از اون داریم که سر نکنیم تا باید هم بران صحابی نیست مثل بسته امیر و مومنی سعات الله سلام پس اجمالا تا عنابین رو که ما تا اینجا بختیم روشن شد چه عنابین رو داریم چه عنابین رو نداریم یه دو تا عنوان دیگه هست که اون چون جمعه فقهیش کمه دیگه متعرض نمیشیم یکی سب و دهره ده ان در دهر به النظر ای این هم داریم در رواد صحیح احسانات هم داریم رو داریم ما هم داریم ولکه این بحث ظاهر فقهی نیست یعنی یعنی کسی که توف میگه توف به روزگار و بزا به روزگار میگه منطفیه نیست که در حیال داره به خدا رفت میکنه نه در و الله مرادی یکی هم سبول امه در روایت اهلسانت شیعه را هم من نمیدونم. که مثلا به شطر اگر کاری میکرد بزا بیرا میبوده هست اصلا ما در نجف بودیم اون زمان ها به 35-60 سال پیش این گاریشی ها مثلا اگه این حسبش علاق شکل کرد. فرد را فرمان کرد بعد زوافت راهنشو که به مو میشدش عشقش کی شهر ایران کرد نبود نام خردان رفت مثلا بغداد را نازنین قرار بود. بود خب خیلی هم منبری های معروف و منبر میگفتن تذکر داغجال بکشن اخلاق بکنه خای چه رفیق از این بود انصافا این رو ما رینا و شاهدنا به چشم خودمون می دیدیم چی دام بودن این واقعه مثلا ممکن در داغشان قله میزد چی نداشت یک کاری میشه صورت به موضوعش ترچین بود به موضوع مثلا حالش بله الان اینکه ماقا ما این حالت رو در روايات عرب بلاذصاریصی در صبل ابل داریم. خب معلومه ابلشون تکلیف نداره صبل ابل که نسه مثل صبود ده اونوار یاد اگر ملازم باشه به حاله ابل یعنی یک احانتی که میکنه مراد مثلا در سجودا صب به خدا باشه یا لا تصبود ده تنقدر خواند این دو تا بلا بله یکم داریم ما الان بله بله داریم بله بله صد داریم فناوی یادم سن بیشتر در یک مسئله رسالت حق بالتهشید یادم آوردن آره صد دیکان کنیم مثلا به هر حال من میخوام این رو کنم این صده هیگاناز یا صده درم این بحث فقی نداره این بیشتر ناظره به اون جمعی که مستلزم مثلا فدر اطلاع به خالق باشه مستلزم جهات کلامیه این جهات اصول عقاعده نه مستلزم بحث فقی باشه چرا؟ نه مخاب بگم که مثل صده مؤمن نیست که باشه خوب نمیاره. واقعه است. مرادی معنی نه. اگر لازمشون باشه، تلازمش اون باشه. ولی ما اگر مثلا حالت فردی باشه، نه، چون اون طرف حساب نیست. الان که ما گفت این هم راجع به موارد است. چون حرف امکان اهل البترا اهل کو این هم روایت چون چه استثناء کرده؟ چه استثناء استثنای در اصله. عكس بومند سبب فیه و بغی ادبیه رو وارد در میخ چون شیخ استثناء موارد استثنا رو یکیشم اینه اهل بده ان تو استثناء, استثناء از اول کاری ما درست نشه این اینم راجع به این قسمت اصلا که این مجموعه روایات خود حالا چند مجموعه روایات انصافا به سب سبب مهم حدیث صحیح و معتبر داشتن که این اینقدر مصیح فرم. این درست مطلب درسته روایت کافی در این حد در این مقدار را چه به سب مؤمن داریم و موجوده و به مقدار کفایت هست اما به اصطلاح لعن مؤمن رو انصافا الان یک روایت درست درمانی نداریم لعن مؤمن بله توی اون به سه نحجر و لاخر توی بعضیش این طور با انتکون و سبابی شدتامی لعانی هم لعانی نداره این باز مبتنی میشه به این نفتیه که لحمه سب یا نه و میاری یکیست و که این سالا شاید بروز رخ کنیم متعرض میشه این کلن راجع به روایات راجع به آیات, آیات باره که خود عنوان سب در آیات نداریم اما افعالی در آیات هست که قابل انتباق بر سب هست مثل فرصانی که بشتن با قول از زور که زور یعنی هر کجی کرد گفتار کجی از زور،, از زور زور معنی انهراف و کجیه از به کلمه زور قول زور زورا هم میگه کن دیجه در اونجا کجیم شده یعنی به اصطلاح شهر بغداد رو در اون قسمت صاف دیجه نساختن دیجه خمیدگی داره این وسط خمیدگی شهر بغداد رو بران کرد دیجه شهر بغداد که در دوره اسلامی بران شد از شهر تیتون زمان سات بود به لحاظه نقشه جهراتیه ای بود دوربرش سه طرفش ترانه آب بود از همون قدیم هم ل... الان هم میگیستم خود لیالی بردار شب‌های بردار خیلی معروف بود که خاطر که سه طرفش آب بود الاس سواه نشابه رو خفتانه بغدار زعبال مسئله در خوبی بود هم. اونم هم زورا بش گفته میشه چون در قسمت که انهناه ساخته شده اصل زورم گفته شده این قفسه ای سینه است، خان سینه میبین کجی داره صاف نیست نیست اصل دیگه اصل خان ران صاف نیست کجی داره میگن اصلش این بوده و کلمه زور یا زورا یا زور در حقیقت معنای کجی رو داره بیشتر به قول زور به قناه هم تصییر شده به که هم تصییر شده ممکنه ما به سب هم تصییرش رو هر کلامی هر گفتار که مستقیم نباشه حجی باشه چون میدونن این حراف در یک کلام ممکن از عجاق مختلف باشه کلام صاف و راس یکیه بعضی از حکم های یونان به شون شده که خط مستقیم به یک میلیون خط مستقیم هم قابل انتباقه یکیه اما خط شکسته نه بر خط, بر... بر خط مستقیم قابل انتباقه نه بر خط شکسته دیگه قابل انتباقه چون شما میلیون ها خط شکسته میچین تصویب بکنید دو تا خطه شکستم برای امتفاق بده نتونه کجیه ها اینطوری هست انهای مختلف هن. راستی همیشه یکیه کجیه طبیعتا جهات مختلف انهای مختلف در لذا قول از زور به معنی جنا آمده قول از زور و زروغ آمده قول از زور و نه تمام این صحبت ها؟ یا به اسطلاح احیاء علوم قضالی آفات لسان تمام این آفات لسان راه درستش درست دقیقه دیگه زوره حتی با قول ما این فارسی زورگیری اونم یکی با قول زوره خود زور فارسی فارس. یک جور زور عربی چرا چون انحرافه چون کجیه هرچی که از راه صاف و مستقیم و سراق مستقیم کجی داشته باشه این زوره لذا سب به موامن هم دیگه زوره. قول زوره چون در وقت که مرحوم شقی نورده این چون به این آیه اونجا اللا یحب جهر الجهر بسورة من القول. قبلا دوست که انسان آشکار ها رازه لحظه سوء کلام سوء به کار ببره. خب اونجا تفسیر به غیبت شده، تفسیر به سبب میشه. چون در بحث غیبت در مستثنات غیبت این بحث آمده غیبت ان اونجا متعرض این آیه هم خواهیم شد اینشالله تعالی علایه آنه از مجموع آیات کتابی این مطلب کاملا واضحه بلا اون لحظه سب نداریم اما مضمون کاملت در میان راجع به حکم عقل که ظاهرا یه خیلی واضح باشه که اگر ما عقل عملی رو به مواقص الفاظ هم سرایت بدیم و از سلوک فردی یا اجتماعی ما نباشه اونجا هم بگیم حسنزو قب داره. یکیش حسن کلماتی حسنن و کلماتی قبی وقتاً صد دسته کلمات قبیه حالا یا برگردونیم حسنقوف عقلی رو به ظلم و عدل یا برگردونیم به کمال و عدم کمال الاختلاف تغییر مطلب هر دو باب سب قابل امتباهه یعنی انصافاً اگر انسان دیگه رو اهانت بکنه سب بکنه الفاظ زشت به کار ببره واقعا ظلمه به خودش هم زوری کرده اصولا همطور که در کران در بحثا گفتیم شکت نعمت عبارت هستی این است که انسان نعمت را فیما و عبدت لح به کار داره شکت اصطلاحا اینه این شکت نعمت نعمت عبصرم کنن شکت اینه که انسان هر نعمت الهی رو فیما او عبدت لح به کار داره خداوند زبان را به انسان ناده که حالفاظ زشت و تعابیر زشت رو به کار پس این هم زول به مردم هم جور به خودشه و ظلم معنی ضد کمال هم هست انصافه و شاید من ازون شاید متوجه حدا نشم اگر دقیق اون نهیات نهج ولایی عبارتی رو که از کتب تاریخ خوندیم راجع به قصه امیرالمؤمنی امیر وقتی امر میفرمایند بین که شما بی این سب نکنین به اینها صبر نکنید بهلشان روایت از پیغمبر نقل نمیکنه این که کلمه امیرالمومنین به همین نقطه احوانه تماشیش میکنه. و شیخ اون کلام امیرالمومنین چون یکی از مبانی خفیه امیرالمومنین که ادیان الهی داره تکمیل عقل اند برای تکامل عقل اصلا لحنه لحن گفتار امیرالمومنین جونی است که حزن میخوان ما تعبد داریم، تعبد اراده بدن. این به سریم انسانی گفت میکنه که انسان الفاظ زشت و رو به کار نداره. برفرضی هم اشکال داره لحاظ فرهنگی اون داره اشکال رو بگه نقاطش رو بگه حلش رو بگه بفهمه اشکال کجاست خودش رو از اون اشکال نجات حضرت میفرما شما به اهلشان رو بگی بجین چه کارهای زشتی کردن تا شما مبتلا به نشین اما اینکه الفاظ زشت بکاه این کار حل, حل نمیکنه مشکل حل نمیکنه الفاظ زشت هیچ مشکل که حل نمیکنه خدشم ی مشکل درست میکنه من به نظرم میاد که امیر المومنی صحابت و در این کلامشون به همین نقطه عقلی نظر دارن. نه بخونم بگم تمثب کردن نه فهمی سمیعت الله یا اول صحاب المومن که موشت برد حالیه. حدیث بخونم بیارن یه امر بجدانی به نیلا آفه باید سکن و سبابی اینها کارهای زیش کردن کارهای اینا رو بیان بکنید روشن بکنید. عواملش بشتنسید سر کنید شما هم این کار نکنید ما چون به ظاهر ظاهرا مسلمان هست، شما سعی کنید خداوند عیبش نشون نشون بده و دست از این کارهای زشتش بردارن. در حقیقت اصل اولی کشتن نیست، اصل اولی هدایته. اون مال آخرین مرحله از دلواات عرب در مورد مسئله آخر اخر دوا الکی. کی یعنی داغ کردن، آهن میکردن رو اونجایی که زخم می‌ذاشتن. می این گفتن همیشه این کی و داغ کردن آخرین دواست، اول مثلا دشونده بشیندن، قرص بشیندن پاشوهی میکنن دواهای دیگر انجام میدن اگر نشد اون وقت آخرین مرحلهش عبارت از اینکه اونو داغ بکنن یا به اصطلاح ما ها امروز دیم جراحی آخرین قسمتش عبارت از جراحیه و الله از دوا نیست حالا بیتا خیلی دوستان برکر اولا دواشون کنید کار خرار میکن که به ماکان جهت عقلیش انصافم خیلی واضحه در جهت احلیش توسعه برای انصافه شامل مؤمن نمیشه حتی شامل اهل بدن میشه فهم <متحدث> چون میگه این یک کاریست برای خود انسان زشته به کار بردن زشت برای خود آدم بده به کار نمی به طرف مقابل <متحدث> بله اصلا خلاف انسانیه کار به نظام که گوشه خونه هم باشه تنها هم باشه خوب نیست الان این که به مکان پس بنابراین به عنوان فردی نه به عنو یک صفت زشتی با اول همین که عرض کردن در کتاب اخلاق ارفانی تبدیل شده آفات لسان قطعا جزه که از آفات لسان هست ولی زا هر تا در اون داره باید بیاد که احلی در را سب بکنید باید هم بر تعبدش بکنید به الا مختصر قاعده هر تراجع به احلی بده از سب که واسه کی میاد بدعت ورزیم حرفی که میزنه این اینه در قرآن این نه یا و در روایات نمیاد و آدم زبون خودش صحبت می علمی مشکل نداره دایی نداره بگینه اهل بدعت مثلا فلان فلان شده است نشینی است الفاظی که تو سبی رو به کار داره لذا حکم عقلی محدودیت نداره, نداره ندار محید ندار محید ندار ندار در نه در نداره نه در میه نه در هیچ نه انطور که ایشون در خروس و دیک و حیوانات و ده چرا چون این از این زاوی دگاه میکنه که کار برزن الفاظ زش اصلا در انسان خوب نیست بگیم به خاطر اینکه چون پیغمبر اکنم این این با اصول آتم مخارم الاخلاق که از تکمیل مکار اخلاق که ممکن است یک چیزی یک درجه قبه ضعیف داشته باشه اما ممکن است من یک مساحت احلای رو تشکیل میدم انجام بریم تکمیل اخیر من یه چند دفعه بحث کردم در این بحث‌ها اشاره کنم بو استله و تمن حضرتو نفه من تاسیس بکنم مکارم و معالی اخلاق هم مکارم مخت اوارشام معالی اخلاق ما معالی اخلاق رو تاسیس نمی‌کنم تشکیل می‌کنم یکی از تکنیم هم این باشه که مثلا علم میگه سب اهل بده جایز نیست قویه ذو آفات لسانه شاعر میگه میدونم قبیحه اما چون یک بزرگی هست که مرد رو از انحراف نجات بده شما این کار قبیح انجام این تکمین یعنی این دقت کنید تکمین یعنی این این تکمین شد اون قبیح عملی حد و حدودش معین شد این مراد از تکمین ها قوه ذاتی نبوده اختیاری بوده و حتی اگر قوه ذاتی یک جزء مصدر بسیار راجعی بوده که آن جل و علا گرفته دقت فرمایید دیگه عنوان ذاتی ظلم پیدا نمی‌کنه ای عزیزکرم این هم راجع به این قصف پس بنابراین به ذهن میاد که ما اگر جنبه یه عقیه رو بگیریم نتایجش فرض میکنه اینکه که در روایات حساب بکنی یا مثلا از آیات کتابی استفاده بکنیم. مثلا اجماع هم که مثلا بین سنی و شیعه اجماعی سنی ها روی لعن یه مقدر اونام حساسیت دارن برای ادیه زیادشون قائل به جواز لعنه کسی که به عمل حرام میشه اما خوندیم از غزالی غزالی میگه یکی که داره عمل حرام انجام بده لعنه شد اگه یه جوری بشه اصلا میگه اگه داره عمل حرام انجام ظالمه 5 سال به داره ظلم میکنه 10 سال به داره میکنه مع ازش ممکن بعد توبه کنه توبه قبول بکنه و این ملعون نباشه خب که این عمل اعمال به مها. ما ختم بشه لیکن این اشکال قضیالی به نظر من به هیچ نیست این لعنه هایی که در اینجا میشه مثل قضیه هینیه در منطقه حیثیتی این طور نیست که مطلق باشه این این حیثیتی در نظر میگیره اگر این آقا مثلا فسن احمال زشن جام میده دروغ میگه شراب میخوادن سجور را کار میکنه این به لحاظی این مادام این کار زشن مرمونه نمیخواد یک لعنه ابدال آبادی این لعن لازم نیست بگیم مثلا ما می‌بینیم شخصی داره که ازش انجام میده اینو رو لعن نکنیم ما. چون که بعد خوب بشیم بگیم نه ما لعن رو این صفت می‌کنیم نه لعن رو این 60 سال 20 سال دیگه 30 سال دیگه هر شخصی که داره این صفت ماشه ملعونه مقصود از رحمت هیلالیس خوب شد برای تبدیل به دعا میشه الان اینکه کماکان این هم راجع به این قسمت که مس چیزی که فقط در اینجا ممکن است بحث بشه رو لعنه رو سردش سبش بحثی نداره این راجع به عدله بعد از این بحث عدله وارد تشریح موضوع میشیم حالا که حکمش روشن شد که سب چیه و سر فرقش با لعنه چیه آیا سب مثلا با لعنه یکیه از کرد با شواهد، خارجی گانی به ذهن میاد که یکی باشند با به سهمی به سه اممی رو بهمیم که از هم لاه با تکن رو سبباقی چ تاامین لحانی که ظه رو که احتمال هم داره که واقعا سه جه یه سر می گردن شما شر میگن لنگ کردم احتمال داره در احتمال هست اینطور بگیم ب یکی در خود قرآن صفت لند به عنوان اسناد حدثی به خدا نسبت داده شده اولایه که الانه الله. اما نه در قرآن در جای دیگه ما نسبت سب رو به خدا نهیم لینویم سب به الله خدا رو فرش داده نمید کنیم چیزن ما روی ما نداریم اولایه که الانه الله داریم این کاملا واضحه که بین سب و بین شد فاصله ای باشه یه حدیثی هم از از پیغمبر داره که خیلی اصناد متعدد, متعدد داره ایما الله من ایما رجبه سببته او لعنته او سببته سببه او لعنته و لعنه اینجوی هم داره از این معلوم میشه که لعن غیر از سبه پیغمبر هرکسی که من سب کردم یا لعن کردم فرشاله رحمتن یا مکفارتن لهم برایش یک درجه از سبه قرار بذاره از به این که این رو هم دارن یعنی انسان با بعضی از شواهد کاملا واضحه که بین سب و لن فرمی میکنه اجماعت و اما تحلیل هم معلوم نیست معلوم نیست اول شون مثال برده شده بعدم بله بعدم چون ممکن است که ببین اون باطن واقعی اشخاصه اون دروه کنید یا خب تو باطن دیمی که سنید یا باطن دیمی این سر بیست منوزی این سر باشه اگه بنارد حقیقت باطنی باشه منوزی سر باشه دلوقت. نه نه این لاجب این قسمت یا اشت موان بودن و نورتون که امیرمانی خب اینجور الفاظ یک این مقداری برای تقوییت متعارف بوده به کار برده بشه نه از اون چیز یعنی به اسطلاح شما مرد هستین چطور مرد هستین قبول میکنیم مثلا ناموس پیغمبر بیاد توی لشر و لشر کشی و این کارها یا دورو برای او راه بیافتیم این بازی ها در بیارو. این مثل اینلم یکون لکون دیل فکرون و احرام هم به دنیا خب ملا خب این مدهی ای چون اون معروف بود ولی برس بازار ارس باید حد, حد داره جاری بشه چون اون دیگه عنوان معروف بوده اصلا چون مادرش اصلا چی بوده جزء از صاحب ها... سا... و الرایات بوده بلدن... یعنی خود سمیه ابتذائا کنیزه یعنی سمیه کنیزه چیز بوده اما نه, نه کنیزه سمیه کنیزه حارث بن کلده هست که طبیب هست. شده کنیزش بوده سمیه من. تصادفاً چهار تا بچه داره هر کسی از و هر کون از شخصیت های حرف شدن نوشتن یه شیعه هم دارده الان کیقه ماکان چون اون معروف بود بعدی هم ودش کرد بخاطر اعمال زشت و در قائق چیز داشت، رایه داشتن خانه داشت مخصوص این کار اون به هر حال معروف بود و لذا حد قصد و رو بار نمی شد خودش هم داره نسبت می داره مادر خودش هم داره خودش هم اون خودش هم گفته شده چرا اما به شهرت بیبیش نبوده بله اون یکی بیشتر بله حالا ازداز فرمیم تا بعدی آشهاش روشن. گوشم عرض کنم که یه مقداری ما فعلا بحث لغوی و ریشه های سب و لعن رو بررسی کنیم من چون بخواهم دیگر کتاب که چی و طول میکشه و اصلاً ما تحلیل میکنیم کلام لغوی ها رو خیلی طول میشه. یکی دو مورد من تحلیل میکنم بقیه رو خود آقای ملاحظه کنن. این مؤجر نمایس اللغه که مال ابن فارسه انصافا خیلی دشنه با نسبت به خودش ایشون اواخر قرن 4 305 این بحث قبلی هم گفتیم که از همون زمان ها تحلیل های خوبی راجع به لغت بوده اما میگم منعکس نشه در کتاب های ما. ایشون میگه بعد از سین با این از سین و الباب من در هم بحث اول توضیح دادم که اینا ادهی معتقدن که این رابطه بین سوت و معنا وجود داره ولو این سین وقایی که جروب میشه عرب باشه حد دفوع بعض و اهل لغه و از اون نوه ابن اصل انه اصلها در باب الگر اینجور تعاونی میان خوبیان علمای لغت کارشون استعمالی استعمالی زیاده تحلیل میکنه کجا استعمالی اصل این باب یعنی این دو حرف به معنای خطه سون مشتوق در من ها این که میان فوش سر میگن این از اون از... که انما او رو جدا میکنه از انسانیت جدا میکنه از صفات خوب جدا میکنه بعد خود ابن فارس میگه و ها دلوی قاله ها صحیح این درسته و اکثر الباب موضوع اون اغیق وقتی موارده اشتغاق و نگاه این همون تواضع همون عملیه من در بحث اول عرض کردم اینی این که آقایون گفتن علامتی حقیقت و مجاز یکیش تواضع یک سر منفیتیش این یکی یکی درست نیست مجموعه ای عملی است یعنی تواضع و سعه حمد و عدم سعه سل و سعه استفهام و, و این مجموعه عمل رو یک نوع تحلیل ذهنی است از این مجموعه ما رابطه بین لحظه و معنا رو کشف می‌کنیم نه اینکه توادر یکیش باشه، صحت هم دومیش باشه، صحت استفهام سومیش نه، مجموع یکیه. بنابراین دقت بکنید، و اول الذی و اکثر الباب موضوع آن ای. یعنی وقتی موازنه نگاه میکنیم می‌بینیم این ریشه در این حرف سین و با وجود داره. منزلی که از س، س بن عرب استعمال می‌کردن. س عبارت است اون چهار گدی که زب نو سرش می‌زاشه. تقیات پارچه وجودا میکرد دوستان سرو سر باشون پوشونده الخمار لانه مقطوع آن من منسجه مثلا پارچه بوده اینا چون در زمان قدیم همون پارچه رو خودشون می‌انداختن چه ریاض احرام وقت یکی کش می‌بوزن برای سرشون ایشون میگه اگر حتی این لفظا دقت بکنید من در بحث اول گفتم که خیلی کارهای ترهیلی میکنیم مثال بوارز شدن بازون داری میخونیم لرنهو محتوی آن من منسجمه از اونی که بافته یک تیکشی جدا میکنه از اون که به اصطلاح بازندگی کرد دوخت درست کرد یه جدا میکنه با عنوان چادر بسوزهای فهم مل اما اصل اصلش سب به معنای اگر هست اصلا خود کلمه ای سب اگر به معنای بریدن پای توری این درمیان عرب را تو بعضی از مناسبتا این حیوان بی زمان را درشون بی می رسید پاهاش می دستاش پاش دیگه این حیوان تکان نمی‌خورد خورد می تو جنگ این کار میکردن اگه ارس داشتن برای این که نشون بزن به اصطلاح موز ما استشادی هم از خودگذشتن. خود گذاشتن پی به ما به می آمدن پی می دنن ما به فالسی بیریم پیی زدن که نه بعد از این خودشون سارون اسل نشان سراغ کنن دشمن ازش استفاده کنه نه به درد دشمن بخوره این اس نه دیگه میگن نه قرار نمی اینجا میمونم تا کشته بشن تا حد استعمار و اشغالی ها در حد این ظاهری هم گویا این در, در مون وسایل جنگی بود گویا تا در میان جاهلیت علامت تفاخر بود حسنگه اینا اوره ای تا اشیای ذریه تا ناقه عقل کرد. اما فایدهش این بود پاهای دست و پای ناقه رو مردم می اون حیونا رو می‌کشتن گوشت میبردن چون دست و پاش که قابل استفاده نیست. این علامت این که این من به مردم بخشیدم. خود زمان امیرمون اینو همینطور شد دو نفر شد. خیلی روزنام 100 تا تا کرد که هست. مردم که گوشت نه. این نبوده این برای رو فرحالی زش بودی این گوشتارو رو امایی که که ما کن این هم بوده. بله یقال سبب تو ناغه ازا اغردها دیگه حتی ملاحظ ترفازن میدونیم این طور بخونید سبب تو ناغه اینه به سیغهی متکلم بخونید ازا اغردها اینه به سیغهی خطاب بخونید یکی که به سیغهی متکلم مهم اگر ازا آورد به سیغهی متکلم خطاب بخونید اگر ای اوورد یغال اگر چون ناگه سبب چون ناگه ای اونجا باز به صيغه متکلم اگر چون ها اگر اذا اوورد اگر ها بخونید اگر ای اوورد اگر چون ها بکنید سبب چون ناگه ای اگر چون ها ای تفسیر سبب جوست همیشه اصلش متکلم واحد است بقول های ما به صيغه این تفسیر اما اذا یعنی یواغون این کلام وقتی گفته میشه اذا اغربا وقتی که شو عقرب بکنه این کلام گفته میشه. دغدغه <تخلصم> من بلاز برائت من. وقتی یک شعریم هم داره، شاعری هم شعر آورده و گفته این ماله اون قصه بودی چون دعوای بین به قاله بین سرسع و سوهیل میشه و بحثی میشه بعد نمیدونم قاضی پنج که شورا میگوشه اون یکی دیگه سرش شتار عقرب میکنه. نمیشه شو درسته چون این قصه مالونه. و بله پس سب اصلش رو همه یه عقره یعنی که انما دست و پای حیوان رو میبره برس میکنه دیگه این حیوان قابل استفاده نیست این شاید این نظر شدیم بوده که وقتی شما کسی رو سب کردیم که انما شخصیت این شخص رو بریدین دیگه ازش استفاده نمیشه میزه مورده تو دیگه با احانت و سبب و او دیگه قابل استفاده نفاید بعد ایش و سبا آشتی، ولا اتاق تا امن شد. و یوقال لَلَذِ يُصَاب يُصَاب سِرَهِ مَجْهُور سب سب در لغت هم سبه. شرط زبه به معنی مذبوحه از فلای نامزد بنزی، زبه زب خوده خوشتان حیوان سر ب نه حیوانه، زبه اون حیوانی که سرش می خواد بشه ridه روشه، زبه به به فرد خود فعل به کسب و قلعانی شبیه اسم مستر یا حاصل مستر و یه شعری هم رو و یقال تصبل ابن فعن نفی ها رقبت الدم فا این گنات بیشت مکنه اموال سبل ابل و اما قول هم لیل ابل مسببه حالا این دیگه شما رفتیم ما ندارم چون این هم بالحق مزید شرحی باید خود بشه و یقال رجلون سببه حالا این یه اسطلاح یه سببه مثل همزه این سیغه مبالغه این دو جور گفته میشه اگه گفته شد رجلون سببه اگر سببه گفته شد یعنی کسی که مردم رو پخشونده اگر سببه گفته شد یقال رجلون سببه کسی که مردم رو پخشونده هم در از فرق این فرقی دو تا با هم بیگه یقال رجلون صوبه اضاکان یسف با ناسه کثیرن و رجلون صوبه اضاکان یسف با کثیرن اون وقت ما بینه اگر به سیغیه به حالت بین دو طرفه این باشه این به اون بد میگه اون به این بد میگه این رو همچه که دیروزم می توضیح زن این باب تفاول بکنه یا تصابون دیگه از باب تفاولش این حالت رو برانه اسمتر پس اون همچین حالتی که طرفین با همدیگه به اصطلاح به کار می‌برن. واقعاً این اوقات در لغت عرب این خصلت هست. اینا هم دارن دنبال همین کارا می‌گردن. مثلا یک لفظ لغت عرب یک معناست. همون لفظ با یک مثلا ترکیب خاص خودش به لحاظ اجرائی شو به لحاظ یه معنای تقریبا زد دو پیدا می‌کنه. مثلا سبب به من قلب بودی اما شواهد شوشن شد سبب سب یعنی قلب خب از همین سب سبب داریم سبب یعنی اون چیزی که سبب برسید شد درست و کلاب قلب لذایشون میگه و هم ملحب فسبب اون سببه ببینید من در بحث صبح آنی کتا شدنش بحث اول ارز که آنی و ها این ریشه کاری ها رو همه این که در برد چهاران هم هست آخه قرنش بارا در نظر گرفتن و روش کار کردن با این که لفظه سب اصلش منه قطعه خب این سبب همونطوره نظاهیشون میگه و عمل هر فرس سبب فهمون کنون انیفون شاد در عمل اصل زدری زکرنا بکر یعنی ممکن این اصلا ماده و اون ماده فرق بکنه چون سبب ماله جمعه اون ماله قد به قد تموم کنون یکون شاد لنه ان الاصل لذیذه کرنا و یوم کن انقال این اصل اصلون آخر دیگه عجیبه و یوم کن انقال این اصل اصلون آخر این خودش برم حالا این اصل آخر از کجا این دیگه از ما احتمال دادیم اصل آخر بوده، مثلا در حجاز سب به معنی قهر بوده اما در ایران یا در شام سب و سبب معنی بحث بوده اصلا آخر یعنی این خودش یکی بیشه مستقلی داره دقت میکنه من در بحث اول آنی تجربه شده از کردم به لحاظ تحلیل که آنگیرن لغوی ها اهل تحلیل نیستن بیان معنایی هرگی بیان استعمال که این درست نیست اون تحلیل خوبی هم دارن دو نکته در کلامات لغوی ها، در سابق مراعات نشده یعنی به این معنا یا آمدن لغت عرب رو به عنوان یک مجموعه حساب کردن اراضی یعنی امام بگویند تا عراق و تا عراق و تا شمال و خوزستان ایران و هر جایی که می‌رسه بعدا که اصلا مصر اون زمانی که تدوین لغت شدن مصر که اصلا عرب نبود فارسی بودن تا تأسیس معاویه و را اس که شد بعد از اسلام مصر عربی شد البته عرب الان مصر مرکز دنیای عربی اصلا اون فرنگستانی که داره بعضی لغت میکنه مهمترین کشوره اینه قلب دنیای عرب نه فقط دنیای اسلام قلب دنیای عرب هم میست حساب میشه و این که اصلش هم عربی نیست الان که فماکان ایشون میگه که ممکن است یک اصل دیگری داشته باشه و این هم درسته متاسفانه کتاب لغت الان همین کتاب لغت کردن دخونی با این دقتش، این بخش ها رو نمیشن و ممکن است این هم متعرض نشده ما این رو در بحث لازره متعرض شدیم ممکنه بر اثر یک اختلاف در حرکت معنای کلمه عوض باشه تو یه دفت بکنیم. این ممکن هست مثلا زر که مصدره زر رو یا زر رو زر این مثلا به معنای ممکن بدی باشه زر اصابه ها زر رو زر رو. اما ذره به معنی نقصه نقصی که برای انسان پیدا میشه مثلا اگر وضع بگیره مریض میشه مرض این نوع نقصه دقیقه میفهم ولذا خود کلمه ذر مثلا فرشون مثلا زار رهو یا اذر ره بیه زار اگر بخواهیم خوب منش تو بحث لذر من توضیحشی اونجا میدم تو بحث لذرم این ممکنن باشه اینطور که خود این تحریک معنا را عوض کرده باشه یعنی خود سب اگر بار رو جدا بکنه معنای دیگری در بیاره. اگر تشریدن باشه معنای دیگری از تو فلا شکر باید تو ابله مناسبه کافیه هم, هم در قطعه خب از این جهت که خب همین تنابی که قطعه خیلی از شده ها رو به هم میکنه از این جهت که واسه هست میتونیم نشونیم این خیلی دور از آبادیه مشهدی که آقا گفت که ماسو دروازه بن حرفی هم نه هم. گفت رفتش اینه که دروازه باز میشه آدم که میخواهد ماسو بخونه درنش باز میشه این درواز رفت ماست و درواز هم. خیلی دوره خیلی ماسریش تو می sagen واقعا ماسو داره خیلی دوره قبون داره خیلی دوره شاید ممکنه باز همین من وقتی چونه فعلا میخونن ممکن از تصویر هی درچی رو بگیری اما خیلی دوره خیلی نزدیکه باید باید چرا داری؟ به نام ما در زدم داری دارید هم ممکنه که ان یکون شاذن اصل میگه احتمال داره که این شاز باشه میگن مشکل اینا احتمال واقعی ترش ممکنه به اختلاف زمان و مکان باشه این رو با متعرض نشده یعنی عرب عراق سبب مت اصلا از سبب تو شرط در نمیوردن اما عرب حجاز و عسیده بعد که کتب لغت نوشتن هر دو چند تا اسمش لغت عربا ما اومدم ببین اینا راست جدا اینجا به مشکل برخورده ما در بحث اول وقتی تحقیق داشتم تو بحث حجیت قول لغوی این مشکل رو عرض کردم یه مشکل اینه که در حجیت قول لغوی مشکل از این مشکل داره یعنی اینا نیامدن مکان و زمان رو در نظر بگیرن در خود همین اولین لغاتی که در لغت عرب نوشته شده مال کوفه است اون هم توی عوال دوم در, دو در سال که مثلا قرآن یه مقدار در مکه نازر شده مقدار شده در, در مدینه اصلا دو فرهنگ دو لغت دو زمان متفاوت سال 40 سال با فاصله دارن دقیقی میفهم؟ این فاصله زمانی رو نی آمدن در این که که شاز باشه یومکن انیقال این اصل اصلان آخر اصلان آخر یه دل و علا طوله به امتدار به خلاف اون اصل اول اون اصل اول یا دل و علاقت و اخر این اصل دوم به عکس بود از... اصل خودشون اصل از هست این یومکه که ایشون میگه این با این تفسیری که ما گفتیم میخوره مثلا در حجاز اصلش برای غص بوده در ارام اصل جاره برس بوده طول بوده و امتداد بوده در غص این امکان داره همچنکه ایشون فرده که. ایشون فرد اختفای ام... کرده به یومکه برنگردونه به تحلیل تاریخی. به هر حال اون که که الان مسلمه ما این تفاوت بین این دوتا میفهمیم. فهمیم بعدم ایشون میگه که سب و سب هم برای امامه هم برای به اصطلاح ریسمان گفته شده و ایشون بخواد اینو بگه ممکنه با تکرار با و تداشتون با یک معنای امتداد توش در بیاد به خلاف قهر که شاید لفظ سب سب هم از همین معنی باشه سب سب که در لغت عرب سباسل دا یه شعر عربی که در ایام محرم مخورن توش هست سباسل سب یعنی سحرای بزرگ مفازه مفازه در اسطلاح عرب سحراهای بزرگی که آدم امید نجات نداره توش این از باب همی که ایشون فرمدن از باب ارس که مثلا شهری اصلا هلاك می‌شه، ملالکه بهش میگن. میگن فالط دادن برای این که انسان نجات پیدا کنه، شیه مفازه بذشن. مفازه رو اصطلاحا به اون میگن. بعد یک دیگه هست اون میگه یوم عید، اونم ما عکسش نمی‌دونیم. فهم مسباسفر یوم عیدن له. برای عرب ها کلمه سباس بهنا یوم عیدن هست. ببینید ونا اجری من مشتقاه او. میگه من نمی‌فهمین یا به صد به معنی قرض یا صد به معنی ریسمان ارجاعش بدیم دفعه بکنی من بحث اول گفتم که اینا خیلی دقیق و ظریف روی شیادی کردن یعنی نمیگه دبیق. همون چیزایی که ما الان میگه تبادل و صحت صلح واسه عملا انجام دادن میگه تبادل ساز ببینن همش اینکه ولی اصولیا انجام بدهن لغویام انجام بدهن دقیق کرد اون وقت این یکی رو اصلا نمیدونی یا از ریشهی که مالکه از تقبوده توش هستی از ریشهی که طول و امتداده این مطلب و الان ما متعلق نسیم محب بذاشم شده <تصفيق> تمه کلام شده شده